شمس شعبان 643 مولوی بدبین بود بعد از رفتن علا مدت زیادی لام تا کام حرف نزد با هم به حیات پوشیده از برف رفتی شبی سرد و ملالاور بود نوعی سنگینی نوعی آرامش غریب در هوا موج میزد. همانطور همانجا ایستادیم و ابرها را تماشا کردیم که به گلوله های پمبه نقرهی اطرافمان اطراف من را سکوتی عمیق فرا گرفته بود باد با خود رایحه مشک و انبر و بوی سیبهایی را می که در باقها گذاشته بودند بماند تا خشک شود لحظه مطمئنا از ذهن هر دمان گذاشت که این شهر را تا ابد ترک کنی نتوانستی یکی از کوزه های شراب را برداشتم کنار بوته گل سرخی گذاشتم که زیر برف مانده و از آن همه گل فقط خارهایش مانده بود شراب توی کوزه را روی خاک ریختم چشمهای مولوی از حیرت برق زد بعد تبسمی ملایم روی صورتش پهن شد بوته گل آهسته آهسته جان گرفت پوستش مثل تن آدمی نرم شد پیش چشمانمان گلی تنها مثل مجدی نارنجی شکوفا شد دومین کوزه را هم برداشتم آن را هم روی خاک ریختم رنگ نارنجی گل این بار زنده تر شد سرخ و براق شد ته کوزه چند جرعه بیشتر نمانده بود توی پیاله خالیش کردم نصف باقی مانده را به طرف مولوی گرفتم. با دستانی لرزان پیاله را گرفت. چیزی را که تعارفش شده بود با ادب و احتیاط قبول کرد. این عالم که در طول عمرش لب به شراب نزده بود به خاطر من به این دلیل که به من و دوستی من ایمان داشت پیاله را میگرفت. گفت رعایت احکام دین مهم است اما انسان نباید به قواعد بیش از جوهره به جزء بیش از کل اهمیت بدهد انسانی که شراب میخورد، نباید آنهایی را که نمیخورند و آنهایی که نمیخورند نباید آنهایی را که میخورند تحقیر کنند امروز پیاله ای را که تعارفم کرده ای با این آگاهی می و از سمیم قلب باور دارم که در مستی عشق هوشیاری هست مولوی پیاله را به دهانش نزدیک کرده بود که فوری پیاله را از دستش قاپیدم و بر برزمین زدم شراب سرخ روی برف سفید مثل لکه خون پخش شد گفتم: تو نخور همینقدر کافی است چیزی را که باید می دیدم دیدم دیگر نیازی نبود این امتحان ادامه یابد مولوی بیش از کنجکاوی با محبت پرسید تو که نمیخواستی من این شراب را بخورم پس چرا از اول؟ مرا به میخانه فرستادی لبخند صدم و گفتم دلیلش را میدانی ما صوفی ها نه با عبادت و ریاضت بیهوده نه با زهد شکلی جبری یا ظاهری بلکه با عشق و جذبه به خدا میپیوندیم قاعده سی و همه پردههای میانتان را یکی یکی بردار تا بتوانی با عشقی خالص به خدا بپیوندی قواعدی داشته باش اما از قواعدت برای راندن دیگران یا داوری دربارهشان استفاده نکن. به ویژه از بت‌ها بپرهیز ای دوست و مراقب باش از راستیهایت بود نسازی ایمانت بزرگ باشد اما با ایمانت در پی بزرگی مباش شخصیت مولوی را از قبل تحسین می کردم اما امروز شیفتگیم نسبت به او چند برابر شد این دنیای دون این صحنه مشعشع که هزار و یک بازی سایه در آن اجرا می شود، پر است از انواع و اقسام بازیگر که فریب پول و ثروت و جاه و مقام را می خورند. هر قدر بر ثروتشان افزوده شود، همانقدر محتاج می شوند به پول. هر قدر بالاتر بروند، همانقدر گرسنه تر می شوند به ترفی. با فساد و حسد، با ذلت و کبر، مال دنیا را قبله خود قرار می دهند. بنده اشیاء می شوند. دانسته یا ندانسته، آگاهانه یا نا آگاهانه. در حالی که همه برای بالا رفتن از نردبان حرس دنیوی پا بر شانه یک دیگر می‌گذارند اینکه کسی که خیلی وقت پیش به قله رسیده به کوزه کوزه طلا به لایه لایه شهرت به هزاران طرفدار و به بالاترین نقطه علم نائل شده روزی از ها به ناگهان از مقام و موقعیتش دست بکشد در راه ایمان به سفری برود که پایانش ناپیداست حتی اعتبار و احترامش را نادیده بگیرد این است چیزی که نظیرش ندیده شده شنیده شده شاید به تعداد انگشت‌های یک دست هم نباشند آدمهایی که بتوانند کاری را انجام بدهند که مولانا انجام داد از اوج به حزیز بیایند، از برد به باخت و از استادی به شاگردی. افزودم خدا کبر را دوست ندارد. میخواهد متواضع باشید باشی. از این رو حتی در قضایایی که حق کاملا با ماست، نباید برتری خود را به رخ بکشی. مولوی با صدایی آهنگین اضافه کرد و او در عین حال میخواهد بشناسیمش. از این رو متعادل و سنجیده رفتار کردن و همیشه هوشیار بودن از مستانه گشتن بهتر است دل صوفی همیشه هوشیار است حق داشت شب را رایه خوش و شیرین در برگرفته بود درونم سرشار از وجد شد هوا رفته رفته سردتر میشد. آنجا کنار هم تنها در زمهریر حیات بوتی پر از گل میانمان نشستیم و مدتی طولانی سکوت کردیم